آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه تسبیح خدا می گویند و او شکست ناپذیر و حکیم است. یا ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی می که عمل نمی کنید؟ مقطعند الله أن تقول ملت تفعلون خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمیکن إ الله يحب الذي يُقاتلون في سبيصف صفك صفا ان بُني برسوس خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند گویی بنایی آهنینند واذ قال موسی لقومی یا قوم لمتؤذوننی وقد تعلمون وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين یاد آورید هنگامی را که موسی به قومش گفت ای قوم من چرا مرا آزار میدهید؟ با اینکه میدانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم هنگامی که آنها از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدا فاسقان را هدایت نمی کند و اذ قال عيسى بن مریم یا بنی اسرائین اینی رسول الله ایلیکن مصدقا مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بی من بعدي. و مبشرا بی رسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالو هذا سحر مبین و بیاد آورید هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده می باشم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است هنگامی که او احمد با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد گفتند این سهریست آشکار ومن من اظلم من من افترى على الله الكذب و هو يدعى إلى الاسلام و لا يهدی القوم الظالمين چه کسی ظالم تر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته در حالی که دعوت به اسلام می شود خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. یوریونلی طاف و نور الله بیاافویم والله مطیم و نوری والله موتیم نوری ولو کری الكافون آنان میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند ولی خدا نور خود را کامل میکنن هرچند کافران خوش نداشته باشند هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون او كسيست كه رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هرچند چند مشرکان کراهت داشته باشند یا ای او الذین آمنو هل ادلکم علی تجارته تجیکم من عذاب الیم ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب درد رهایی میبخشد می بخشد تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله بأموالكم اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این برای شما بهتر است اگر بدانید یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات لكن تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم اگر چنین كنید گناهانتان را میبخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در های پاکیزه در بهشت جاویدان جای می و این پیروزی عظیم است و اخرات نصر من الله و فتح قریب و المؤمنین و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ یا ایوها الذین آمنوا قولوا انصار الله كما قال عیس بن مریم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة فأيّدينا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ای کسانی که ایمان آورده اید یاوران خدا باشید همان گونه که عیسی ابن مریم به هواریون گفت چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند هواریون گفتند ما یاوران خدا ایم. در این هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأیید کردیم و سرانجام بر آنان پیروز شدند